هزار افزان بنامه خدای یگانی مهربان سلام افسانه ها و قصه های عامیانه معنای پنهانی دارند بنابراین در افسانه ها و قصه های عامیانه برای اندیشیدن وجود داره و ما افسانه از مردمان سرزمین کره براتون نقل میکنم به نام افثانه پری و هیزم شکن جوان برگرفته از کتاب نوت افسانه با ترجمه از رزوان دسفولی الهه پیش در سرزمین کره هیزم شکن جوانی به همراه مادر پیرش در دامنی کوه الماس زندگی می‌کرد. جوان افسانه‌ای ما هرچند بسیار سخت کوش بود ولی باز اونقدر فقیر بود که در دهکده هیچ دختری حاضر نبود باش ازدواج کنه. برای همین هم جوان افسانه‌ای ما تمام وقتش و صرف مراقبت از مادرش و رفتن به کوهستان و قطع درختان خشک میکرد. روزی از روزها وقتی شکن از قطع درختان خشک فارغ شده بود و مشغول جماوری اونا بود صدای خشخشی رو در لا بلای درختان شنید. وقتی سرش رو بالا گرفت گوزنی رو دید که به سرعت به طرف اون میدوید. پهلوی گوز زخمی بود و خون از جایی زخم جاری بود. گوزن نالان گفت آه، ای هیزم شکن جوان کمکم کن شکارچی در تعقیب منه دیگه نای دویدن ندارم خواهش میکنم خواهش میکنم منو جایی پنهان کن هیزم شکن که دلش به حال گوزن زخمی سوخته بود گفت فورا زیر این شاخاهی کات پنهان شو همین که گوزن زخمی پنهان شد شکارچی سواری از راه رسید و با لحنی خشن گفت این طرف یک گوز زخمی رو ندیدی مرد هیزم شکن جواب داد چرا چرا دیدم از این طرف به سرعت گذشت و به سمت پایین کوه رفت با شنیدن این حرف شکارچی به سرعت از اونجا دور شد با رفتن اون گوز از زیر شاخه‌ها بیرون اومد واز شکن تشکر کرد و اون گفت اوه تو جنه منو نجات دادی من میتونم یکی از آرزوهای تو رو برآورده کنم حالا هر آرزوی داری بگو مرد جوان شکن گفت من و مادرم با هم زندگی میکنیم اگه اگه میشد مادرم قبل از مرگش نواهاشو ببینی خیلی خوشحال میشد من من آرزو دارم همسری خوب و مهربان داشته باشم تا برای من فرزندان زیادی بیاره و مادرمو خوشحال کنه گوس گفت باشه باشه من این آرزوی تو رو برآورده می کنم هیزون شکن با خوشحالی گفت واقعا تو منو به آرزو می رسونی؟ گوز جواب داد، البته، البته که میتونم، تو باید در روز پانزدهم ماه وقتی که غرص ماه کامل شد به بالای کوه الماس بری. در اونجا دریاچه هست که آب اون بلورینه. در اون شب هفت پری برای گردش و تماشا به اونجا میان. اونا موقع گردش بالهاشون رو بیرون میارن. تو باید به دقت به تک تکشون نگاه کنی. و از بین اونا یکی رو به همسری انتخاب کنی هیزم شکن جوان پرسید به همین راحتی گوز جواب داد بله بله ولی باید به سرعت بال اون پری رو برداری و در جایی پنهون کنی تا اون نتونه پرواز کنه بعد وقتی گردش اونا تموم شد شش پری که بال دارن به آسمون پرواز میکنن ولی پری هفتمی، روی زمین باقی میمونه این،, این بهترین فرصته که اونو به همسری خودت در بیاری بعد تحکید کنن اضافه کرد اما یادت باشه یادت باشه تا اون پری برات چهار فرزند به دنیا نیاورده بالاشو بهش پس ندی گوز این حرف ها رو گفت و بلا فاصل از اونجا دور شد Oh, oh, oh. ایزومشکن شخان افسانه ما بی‌صبرانه منتظر رسیدن شب پانزدهم ماه بود. و وقتی اون شب فرار رسید به طرف کوه الماس برافتاد. افتاد شکن در حالی که قلبش به شدت می‌تپید، لا بلای بوتها پنهون شد. چیزی نگزش که هفت پری زیبا از آسمون به طرف زمین پرواز کردند و کنار دریاچه نشستند. اونا بالهای ابریشمیشون رو در و با شادی به گردش پرداختن. شکن به سرعت از لابلای بوتها بیرون اومد و یکی از بالهای ابریشمی رو برداشت و زیر لباسش پنهون کرد و دوباره لابلای بوتها پنهان شد. به آفتاب طلوع کرد. و پریا از گردش دست کشیدن و تک تک بالهاشون رو برداشتن و به طرف آسمون پرواز کردند اما اما یکی از اونا هرچه اطراف گشت نتونست بالاشو پیدا کنه و وقتی نتونست بالهاشو پیدا کنه همونجا نشست و های های گریه کرد در این موقع شکن جوون از مخفیگاه خودش بیرون اومد و به طرف پری رفت و با مهربونی بهش گفت گریه نکن من من مراقب تو هستم تو تو حاضری به من بیایی و همسرم بشی؟ پری با التماس از هیزمشکن خواست که بالهاش رو به اون پس بده شکن لحظه تحت تاثیر حرفای پری قرار گرفت از ازدواج با اون منصرف شد اما بیاد حرف گوز افتاد و کتش رو روی های پری انداخت و اونو به پایین کو جایی که خونش بود راهنمایی کرد با اینکه با ورود پری مادر هیزم شکن با روی خوش از اون استقبال کرد و با مهربونی با اون رفتار کرد اما پری احساس ناراحتی میکرد. پری تموم اون شب تا صبح گریه کرد روزها به همین ترتیب گذشت و بالاخره پری راضی شد که به همسری سریه هیزم شکنه افسانی ما در بیاد. ایزمشکن افسانه ما مرد مهربونی بود هرچند چندان به آداب زندگی آشنا نبود اما همیشه غذای کافی برای همسرش آماده و مهیا میکرد و تمام آدابی رو که یه فرد زمینی باید بدونه به اون یاد میداد زندگی اونها به همین ترتیب گذشت و در پایان سال اونها صاحب پسری شدن سال بعد از اون هم فرزند دیگهی به خونواده اونها اضافه شد پری بعد از تولد هر کدوم از فرزندانش از همسرش میخواست تا بالهاشو به اون پس بده و به اون میگفت آیا فرزندان ما علاقه و وفاداری منو به تو ثابت نمی‌کنه؟ خواهش میکنم خواهش میکنم بالهامو به من پس بده مطمئن باش به تو خیانت نمی کنم. من تو و فرزندانم و دوست دارم اما هی به بیاد حرف گوه میافتاد می افتاد و از این می ترسید که مبادا همسر و فرزندانش رو از دست بده حقیقت هم این بود که پری همچنان در حسرت خونش توی آسمونها و به پدر و مادر و دوستاش فکر می کرد مدتی گذشت با سومین فرزند اونها هم به دنیا اومد این بار هم پری به همسرش گفت ای همسر مهربونم حالا حالا که سومین فرزندمون هم به دنیا اومده بازم نمیخوای بالامو نشونم بدی من فقط میخوام یه بار به با اونا دست بکشم ایزون شکن که همسرشو دوست داشت از این حرف زدنش دلش به رحم اومد به بالهایی رو که سالها پنهون کرده بود به اون نشون داد. بعد اون حرف گوزن رو کاملا فراموش کرده بود. زن نگاهی به بالها انداخت و گفت آه، هبریشم بالهای من چقدر نرم و صریفه. بذار اونارو رو ببوشم تا بچه هامون هم رو ببینن. مرد از اینکه به همسرش اعتماد نکنه خجالت میکشید برای همین با دستی لرزون بالها رو به همسرش داد. وقتی زن بالهاش رو بتن کرد فرزندانش رو صدا زد و گفت بچه ها بچه ها بالای مادرتون رو تماشا کنین. وقتی بچه ها شدند شدن زن در چش چشم هم زدن به طرف بیرون خونه دوید و در حالی که بچه ها رو زیر بغل گرفته بود به طرف آسمان ها پرواز کرد. مرد در حالی که به دنبال اونها می فریاد زد برگرد برگرد خواهش می کنم برگرد اما همسرش جواب داد خدا نگهدار عزیزم خدا نگهدار با اینکه به تو علاقه زیادی دارم اما می خوام به خون اصلی خودم برگردم من متعلق به اینجا نیستم تو دیگه هیچ وقت من و فرزندانمو نمی بینی مرد نالان و غمگین گوشه اینش و عشقه هیچکس نمیتونستین نامه بزرگ رو از دل اون بیرون بیار حتی مادرش دهی گذشت و هیزم شکن هنوز نتونسته بود همسر و فرزندانش رو فراموش کنه تا اینکه روزی به همون گوزن که در لاپلای درختها دیده بود برخورد کرد گوزن که اونو ناراحت دید گفت آ، نخور، حس نخور. تو باز هم میتونی همسر و فرزندان تو ببینی. هیزم شکن با ناباوری گفت واقعا میتونم یه بار دیگه اونارو ببینم، واقعا گوه گفت البته یه کمی سخته، ولی میتونی از اونجایی که تو بال یکی از پریا رو برداشتی اونا دیگه برای گردش به دریاچه نمیان ولی در روز پانزدهم ماه، وقتی ماه کامل شد اونا سطلی رو به تنابی میبندن تا از دریاچه آب بلورین آب بردارن تو باید یک داخل سطل بری تو اونا تو رو بالا بکشن بله این تنها راهیه که میتونی یه بار دیگه همسر و فرزندان تو ببینی هیزوم شکن افسانه ای ما این بار هم بی‌صبرانه در انتظار رسیدن روز 15 ماه موند بالاخره روز موعود فرا رسید ایزومشکن به طرف دریاچه به راه افتاد و با اشتیاق توی آسمون به دنبال سطل گشت نیمه شب بود که سطل بزرگی که به تراب محکمی وصل بود از آسمون به طرف دریاچه پایین اومد ایزومشکن با سرعت داخل آب سرد دریاچه شیرجه زد و با عجله به طرف سطل شنا کرد و قبل از اینکه سطل به طرف بالا بره خودشو داخل اون جا داد و محکم تنابونه داشت. کم کم احساس کرد به طرف بالا داره کشیده میشه. خلاصه ایزون شکن اون قدر بالا رفت تا به سرزمینی رسید که آسمونی آبی و زمینی تلایی ده. وقتی پریان به جای آب مردی رو داخل سطل دیدن یکی خوردن اما در این بین همسرش با دیدن اون فریادی از شادی کشید و از خواهرانش خواهش کرد که همسرش رو دوباره به زمین نفرستن ولی خواهرانش گفتن بهتر پدر در این وارد تصمیم بگیره چون اون فرمان یا آسمونه وقتی اونا پیش پدر رفتن فرمان روای بزرگ با دیدن چهره تابناک دخترش موافقت کرد که موجود زمینی یا همون مرد هیزم شکن افسانه ما در کنار خانوادش بمونه. زندگی توی آسمون با زمین خیلی فرد داشت. اونجا شکن مجبور نبود کار کنه یا نگران چیزی باشه. اون میتونست تمام روز رو با فرزندانش بازی کنه و در کنار همسرش باشه و گاهی بیاد مادرش میافتاد و. نگران این بود که حالا چه کسی به مادرش کمک میکنه؟ بالاخره روزی رسید که هیزم شکل افسانه ما تصمیم گرفت به زمین برگرده و به مادرش سری بزنه. اون به همسرش گفت: « همسر عزیزم، من به عنوان یه فرزند این وظیفه رو دارم که قبل از مرگ مادرم، به دیدنش برم اما همسرش با التماس از اون خواست که از رفتن سرف نظر کنه چون اون نمیخواست یه بار دیگه از همسرش جدا بشه بنابراین با ناراحتی گفت همسر عزیزم اگه اگه به زمین برگردید که هرگز ما رو نمیبینی اما مرد اونقدر پافشاری کرد که زن راضی شد برای چارجوی نزد پدرش بره بعد از مدتی وقتی زن از پیش پدرش برگشت به مرد گفت تنها یه راه وجود داره و اون اینه که با اسب بالدار پدرم به زمین برگردی اما یادت باشه یادت باشه نباید از اسب پیاده بشی چون به محض اینکه پاتو روی زمین بذاری اسب بدون تو به طرف آسمون پرواز میکنه و تو و تو تا آخر عمر روی زمین باقی میمونی مرد به همسرش خورداد که نزاره حتی نوک پنجه هم به زمین برسه. مرد سوار اسب بالدار شد و در یک چشم به هم زدن خودش روی زمین و در کنار خونش دید مادر با دیدن پسرش از شادی فریاد کشید و با خوشحالی گفت پسرم خوش اومدی اتفاقا امروز آش کدویی که تو دوست داشتی بختم بیا بیا پایین و یک کاسه از اون بخور پسر گفت نه نه مادر من نباید از اسبم پیاده بشم و بعد برای مادرش توضیح داد که چرا نمیتونه از اسبش پیاده بشه ولی از اونجایی که نمیخواست مادرش مادرشو بشکنه به اون گفت باشه باشه یه کاسه از آش میخورم مادر بلافاصله یک کاسه آش داغ برای اون آورد و به دست پسرش داد ولی از اونجایی که آش خیلی داغ بود دست پسر سوخت و نتونست اونو محکم نگه داره به همین دلیل هم چند قطره از آش روی پشت اسب ریخت و اونو سوزوند اسب از شدت درد شیههای کشید و روی دو پای عقبش بلند شد و با این حرکت پسر از اسب پایین افتاد و اسب در یک چشم به هم زدن به طرف ابرها حرکت کرد بعد به این ترتیب مرد برای همیشه فرزندان و همسرش را از دست داد و دیگه نتونه سونا رو ببینه از اون روز به بعد مرد دیگه رغبتی به کار کردن نداشت و تمام روز کنار خونش می و با چشم های به آسمون خیله می‌شد. اون اونقدر در اندوهش قرش شد که بعد از مدتی کوتاه از دوری زن و فرزندانش از دنیا رفت مردم سرزمینی کره میگن روزی که اون از دنیا رفت خروسی روی پشت بوم گردنش رو به طرف آسمون کشید و با فریادی که انگار قلبش رو هزار تکه میکرد شروع به فریاد زدن کرد. اونا میگن در واقع این روح هیزم شکنه که از اون به بعد با فریاد همسر و فرزندانش رو در آسمون صدا می Bye. <laughs> Bye. افثانه زیبای پری و هیزم شکن جوان را از مردمان سرزمین برتون نقل کردم بر رفت از کتاب نود افسانه با ترجمه رزوان دسولی افسانه های پریان منبع الهام کودکانی بودند که در بزرگی دانشمند شدند یا تونستن خودشون نویسنده ی آثار تخیلی بشند. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالحپور ویراستار سهیلا کریمی اقدا اجرا مهران دوستی صدابردار اکبر نیکاین کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدر